اوزول الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بی نستعین وهو هو خیر و موفقین و محین یک سلوات با هم بفرستیم تقدیم به محمد و آل محمد با هم صلوات و آل رو محل بحثمون رو توضیح بدید الان کجا رو میخوایم بخونیم بحث به کجا رسیده خوش کردیم خوبگه خوبه بحث الان کجاست؟ کجا دسیدیم؟ س... سه امرو رو به نظرم یه جلسه عقبی صوت رو درسته؟ صوت بیروز رو صوت بیروز رو بیروز گوش رو... کردید خب پس این خود جلوتر آقای فرراخی فرمادید آقای فرراخ شما توضیح بدید؟ چی؟ ها تازه چتاب خیلی خب چی؟ خب. هفته بعدم میگی تازه تصمی گرفتم بخونم خیلی خب. این کتاب یه خود به سخت اگر دیر به جانبید دیگه از دستتون میره بسیار بسم الله الرحمن الرحیم من دیروس یه تقسیم بندی نوشتم اون رو حتما ببینید تقسیم بندی کل برش رو از اول تا اینجا نشون میدار به شما بحث ما الان در اینجاست سیره هایی که مرتبط به موضوع حکم است، نه سیره هایی که در راه رسیدن به حکم شهری ازش بهره میگیریم نه سیره های مرتبط به موضوع حکم شهری هستانی آقای تو آقای بحث انجاز. اقسام سیر اسم اول سیر مورد استفاده در رسیدن به هاوچون خوش بشه تو سیر مرتبط به موضوع موضوع سیر مرتبط به موضوع حکم شهر رو الان داریم براتون بیان میکنیم سه نوه نوع اول آقای کسری نوع اول رو بیان میفرمایید سیر مرتبط به موضوع نوه اولشون بود که خود سیره موضوع یه حکم شهر باشه خود سیره موضوع حکمشه هست. مثلا، مسئول؟ آقای، اسکر مسئولش رو شما کنم؟ یه که که سیره سالهه رو ترک نکنید. سیره فاسده رو نرز کنید، ترک کنید. مسئول شما از نفت رو دوام این نوع رو که دیدوز رو کردیم. نوع دوام بله البته دیدوز نگفتیم تا سر همین نوع دوام رسیدیم نوع دوام سیره به قسمت همینجا همینجا یا به نیبره بعد عذیتش سیره محقق و منا موضوع است گفتیم به موضوع دیگه خب نوع دو میاد نه چه خودش موضوع باشه موضوع چیز دیگری است ولی اون موضوع توسط سیره محقق می شود و سیره می شود محقق به اون موضوع خود همین البته باز دو جوره دو مدل، دو نه هست ببینه چه این نوع دقوم دو نحره نحره اول ببینید اینجا محبه تمام الموضوع نهو ثانی محبه جزفر موضوع خیلی خواهد، این هم از نوع دوم بذارید نوع سیفون رو هم همینجا بینبسیم جلوی چشنتون باشه نوع سیفون سیرهی که خودش موضوع حجم شهر نیست نوع دوم هم نیست که محبه موضوع باشد بلکه موضوع چیز دیگریست و تحقیمش هم به سیره رتی نداره ولی سیره کاشف از اونست سیره برای ما رو کشف میکند. کند پس سیره کاشف از موضوع است تو نوم دوم سیره محقق موضوع است تو سوم سیره کاشف از موضوع است لذا، برای نوع دوم هم تربیر سبوت میگه سیره محبه و محبه موضوع از سبوتن تو نوع سیره کاشت از موضوع است اصفاتن این تو زیرتون باشه یه یعنی درست بله؟ مفجره شده فرق اصفاتن شده فرقشون برد. همینیه که نوع دوم و سوم هم فرق داره دیگه نوع دوم محقق موضوع هست ببینید الان این که تو دست منه فرص کنید این نبوده است. سیره باعث شد این ماشیک به وجود آمد این میشه نوع دوفم حالا یا کلش یا یه جزش نوع دومه تبیره تتاب در مورد این نوع سبوتنه یعنی میگه محقق هست سبوتن. اما در خارج سبوتن یعنی در آلم خارج محقق شده اما تو نوع سوم یعنی اینجا معنی سبوتن و اثباتن اینه سبوتن یعنی در عالم خارج محققه موجوده سیره این موجودش کرده به وجودش آورده. نوع سفون خودش موجود هست این ماجدیک در موجود هست سیره او رو برای ما کشف میکنه نه اینجا محقق؟ نسا به اثبات میکنه پس اگر سبوت و اثبات جای دیگه جل جا دیگه تو زینتون بود اینجا به این معنی در نظر بگیرید خیلی خواهد ایبانت رو ببینید یه خود بخونیم طبقه ایبانت بینیم جلو آقای متحریم این بحثی که الان توش هستیم الفصل الول اول یک مطلبش اقسام سیره ها بود یه مطلب دیگه چی بود یادت هست؟ آ، منات ما اقسام سیره قسم اولش رو گفتیم که در مورد حکم بود میشه. مناتش هم, هم گفتیم الان تقسیمات این تقسیم سیره رو قسم دومش رو داریم میگیم ولی هنوز منات رو نگفتیم این سه اسم باید تموم بشه بعد انشالله پس بحث منات طلب شما وقتی این سه قسم مربوط به موضوع تام شد مناتش هم یادتون باشه ببینیم. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم ام نو اثانی مالهو دخلون فی تنقیه الموضوع و تحقیقهی سبوتن این سبوتن رو به خاطر همین توضیح دادم. روی این سبوتن اگه میخواید قدم فراموشتون نشه اینجوری بنویسید. بنویسید. معذورا ثبوتن یعنی موضوع را در عالم خارج و تکوین محقق میسازد نه اینکه کاشف کاشف از آن باشد ثبوت یعنی حالا که ثبوتان رو نوشتید بذات کارمون رو دیگه همینجا انجام بدیم برید نوع سالش رو هم ببینید دو صفحه بعد نه سالس رو ببینید اونجا چی نوشته؟ ما و دفلان فی تنقیه الموضوع و تحقیقهی اونجا دیگه نه ثبوتن بلکه اثباتن بنویسید روی اثباتن یعنی سیر کاشف از موضوع است برای اونجا اطفاقا عبارت رو اونجا هم ببینید اینا رو میخونیم تا نوع دوم بیشتر جا بیفته براتون نوع سوم رو ببینید قد تکون سیرت العقلایته منقدتا و ومحققتا لهو اثباتا نوع سوم دیگه به چه معنا به معنا آنها کاشفتون ان تحقق فردی از اون مصادیق موضوع حالا برگردید نوع دوم رو بخونید تا کاملا جا بیفته که تاکون سیرت ال اقلاییت او منتهتاً یعنی منقه اینجا بهم محقق است منتهتاً للموضوعه و محققتاً لهو این محقق اینجا اتفاق تفسیر میشه منظور از منتهه نیست سببتان دیگه تو نمیده و وَإِلَّمْ يَنْحَسِرْتَحَقُقُلْ موضوع فیها. حالا یه لحظه من نگاه کنیم ما الان بهتون توضیح خواهیم داد خیلی هم توضیح می که سیره چطور موضوع حجم شری را ایجاد می کند یه موضوع شری بگید یه موضوع حجم شری بگید همینجوری هر چی شد شد چی؟ الخمرو حرامه باش الان یه الخمرو موضوع حجم شعریست تحقق خمر به چیست خمر بودن خمر مسترد. به چیست؟ خمر به چه واسطه ای حاصل میشود؟ موسیقی بودن با چی؟ موسیقی باشد نه ش... صفتشو که نمیخوان چطوری خمر ایجاد میشه؟ آبانگو می رو میشونم تای فرایندی تبدیل به خمر میشه خب الان تحباق موضوع در خمر ربطی به سیره داشت یعنی سیره او غلا باعث شد خمر به وجود اومه نه ربطی نداره لذا ما ادعا نمیکنیم نه نمی قابل نگیم که موضوع ها همشون با سیره محقق نه بعضی از موضوع ها با سیره محقق میشوند لزوما هم تو تذکر میده میگه که و ان لم ينحسر تحقق الموضوع فیها تحقق موضوع در سیره اقلایی منحصر نیست این فیها رو جال و متعلق به ینحسر بگیرید نه به تحقق تا معنی درست بیار من چیم میشه؟ منحصر در سیره نیست بله؟ سیره اقلاییه بله سیره چون متعلق به یه شد پس اینجوری منی کنید منحسل در سیره نیست تحقق موضوع بلقد قدیه تحقق و به غیره ها به غیر سیره هم محقق میشه مثلا مثال خمری که شما زدید و همینطور مثال های دیگه یعنی محقق موضوع یه چیز دیگه هم میتواند باشد قیل از سیره بسیار خوب و هو و علا نحوینه خود این نوع ثانی که موضوع را محقق میسازد خودش دو نحوه است دو گونه است نه یعنی دو گونه مدل آقای عسكري اون دو نوعش رو حفظ کردی یادت مون محقق موضوع یا محقق تمام الموضوع یا جزء الموضوع میخوام همینجا حفظ کنید ولی کار برای بعد نمونید اذیت میشید سعی کنید یه خواهشی دارم سعی کنید کلاس ها رو طیبت نکنید. حتی اگر همین ساعت هفتم بود دیگه چهارره ای نیست. کلاس ها رو بیاید چون کلاس رو از دست بدید خیلی اون فهم و درج شما از این بحث ها خیلی چم میشه افس میکنه. کلاس ها رو باشید همینجان کار رو تمام کنیم. یه کار رو کنید که خیلی هم نیاز به مطالعاتبددینا نداشته باشید. خب، نه ول یه لحظه من نگاه کنید. الان باید این رو برای شما توضیح بدیم. مثال بزنیم. بدرسته کنیم. سیره ای برای شما ارائه کنیم. این سیره اقلایه باعث می شود. یک موضوعی به وجود می که اون موضوع رو خدا براش یه حکمی رو قرار داده. مطبع خیلی روشنه. چیزی به ذهنتون بعید می دونم برسه الان، که بگید که بله سیره محقق این موضوع. اگه می رسه بگیتیم. بعد بگونم الان به تون بگید داره خودم بارد میشون الان بارد میشون چجا هست؟ النحوال اولو ما یتدخل و فی تنقیه و تحقیق الموضوع به تمامه اون سیده ای چه؟ دارد دخیل است در تنقیح و تحقیق موضوع اینجا به تمامه روی این به تمامه دویدی روی این به تمامه بنویسید یه دایره چیزی بنویسید یه خطی چیزی بکیشید زیرش این نحوه اول مطلبش اینجاست که به تمامه ان نحوه ثانی دو سه صفحه بعد. ببینید ان نحوه ثانی رو اونجا نوشته ما رهو دخلان فی تنقیه جز الموضوع این همه تقسیمات دیگه تمام شد اینا که گفتین همش تو دستتون باید باشه خیلی خیلی حالا برگردید انه اول رو ببینیم چی هست میگه که اونی که موضوع را به تمامه منقه و محقق میسازد اینجوریه به ان تکنه یه نقطه عبارتی بگم فرمتون تو امتحان شفایی ناگرزون نا مشומد اینو حتما جواب ما یتدخل فی تنقیح و تحقیق قل موضوعه به تمامه یه نکته ادبی تو این عبارات هست چی بود میتونید بگید نکته ادبی از هر نظر یه نکته بگید یه نکته اینجا هست که نشون میده خودش ماشقسه شرمه تندیهه با تنوینه یا بی تنوین بی تنوینه چرا نه بابا تنوینه مصرف با تفعیله چه چهش خیره منصرف این تندی نه اضافه شده چون بعدش واق داره و نه الافلام داره خیره منصرف این حرف نیست پس باید تنوین بگیره درسه دران که تمرین نمیدید. دید پس راست دلیل نکته داره همین راحت نیست. چرا شده که خودتون برید دنباله؟ عبارت رو یوا دیگه میخونم سعیش رو ما یتداخل فی تنقیحه پس نکته اینجا بود. و تحقیق دل موضوعه به تمامه. علتش اینه که این چی؟ نه آه. گفتم که غیر مصری نیست. خب همون وزم و یعنی غیر منصرفه دیگه نه این اون نیست اولا ثانی هم وزم نداره اصلا علتش اینه این در واقع اضافه شده به موضوع یعنی تنقیهل موضوع و تحقیقل موضوع در واقع اینجوریه لذا تنویم بهش نمیده به انتکون از سیرتال حالا سیره اینجوری میاد یک موضوع را به تمامه محقق میسازد بنتکون از سیرت و اقلائیت و محققتن، محقق است، ایجاد کننده است، چه چیزی را لفردن، لام تقویت، محققتن لفردن حقیقی، یه فرد حقیقی، از افراد من افراد موضوع الحکم شرعیه، یکی از افراد موضوع حکم شریع را برای شما محقق می سازد فرد حقیقیش رو برای شما محقق می سازد. میگه این یه فردی از اون موضوع پس سیره موضوع رو برای شما ساخت سوا اون اکا نزال کل فردو فردن حقیقین لهو فردن له... حقیقین لهو فی طوله این لهو یعنی برای اون موضوع در راستا و امتداری یک اعتباری او بیاد پایین یه خط بیاد پایین او کانه فردن حقیقی یا لئون موضوع ابتداعن. خب این باید توضیح بدیم مطلب خیلیه این کتاب من خب کتاب جدیده دیگه من تدریس نکردم این قبضا ولی خصوصیات برجسته این کتاب که تو این چند صفحه من دیدم اینه که یه مقاله‌ای رو میخواد توضیح بده تو متنش 10 تا مطلب متفرقه دیگه هم جا میده این باعث میشه که مطلب به خود سخت میشه اما خیلی مفیده یعنی باعث میشه عبارت خیلی پرباره ولی خب سخت میشه یعنی خیلی راحت الان میتونست بحث رو ببندیم ولی در لابلای حرفا خیلی نکات مفید و متعددی رو ذکر الان نکته ای که اینجا هست اینه ببینید اول من یه سیره براتون بگم که موضوع رو محقق بکنه مثال کتاب هست دو سه تا کتاب خودش مثال خواهد زد برای شما یهو چه شهری میگه حکم شرعی هست لباس مختص کفار لباس مختص کفار برای ما مسلمان ها چیه حرام چون تشباقی به کفار ها پیش میاد دیگه خیلی حکم رو می شما حملیات این رو اینجوری کار هست حکم رو من اینجوری بار می شود برای یک موضوعی پوچ شد برای موضوعی بار حالا الان در اینجا موضوع ما این است پوشیدن یا تشبه به کفار یا پوشیدن لباس مختص کفار لباس مختص کفار بزنید باید تو درسته لباس مختص کفار این موضوعی است پچه شیست حرام است حرام خب؟ اگر خیلی تیز باشید الان با این مثال مطلب رو میگید اگر نباید یک کلی توضیح مزد موضوع ما اینه لباسی که چی؟ مختص کفاره یعنی چی؟ این رو بازش کنیم لباسی که مختص کفاره یعنی چی؟ یعنی لباسی که کفار نه به وجود آوردن نه لباسی که کفار سیره سیر شده آره آره درسته یعنی لباسی که سیره کفاره حالا یه سوال از شما اگر کفار سیره در پوشیدن این لباس رو نداشتن لباس مختص کفار وجود داشت؟ نه کفار اینو پوشیدن سیره شد براشون شد شد لباس مختص کفار دیگه و الله لباس مختص کفار نمیشد که همینه ببینید سیره کفار باعث شد این موضوع ایجاد شد تحقق خود, خود موضوع به واسطه سیره خود اون اغلا هست کفار هم دیگه هم نیگه بده البته اغلای طبیع ها و الله کافر عقل <تصفيق> نداری کافر عقل که کافر نمیشه حالا اون چیزی که الان حالا میخواد نکته اضافی تو عبارت گفتم هست میخواد بگه اون اینه میگه که این سیره ها بعضی هاشون در امتداد و در راستای اعتبار معتبر است اصلا حواستون پرت نشه فقط با من باشین تا همینجا جا افتاد برای بعد نزارید فهم مطلب رو بعدا اذیت میشه. دوباره میگم این سیره که محقق موضوع هست بعضی هاش در امتداد اعتبار معتبر است یعنی چی؟ یعنی شروع این سیره با اعتبار معتبر شروع شده اما بعضی از این سیره ها اعتبار نمیخواد همین سیره از این سیره شروع شده بدون این کسی؟ استارتش رو بزنه و بیاد بگه اعتبار میکنم نه بدون اینکه که اعتباری بشود خود به خود این سیره شروع شده و تبدیل به سیره شده حالا همین سیره محقق موضوع حکم شدیست اما توانیه چی؟ اول یه شخصی میاد حالا شخص حقیقی یا حق شخصی میاد یک چیزی را اعتبار میکنه وقتی اعتبار کرد اغلا به اون اعتبار اعتناء میکنن طبق اون امن میکنن امن میکنن میشه سیره و غلان. هر هرچون خیلی مرتبه ساده بودم دوباره تکرار میکنن خیلی خلاصه سیره ها این سیره هایی که محقق موضوع هستن یا یه نفر اعتباری را انجام داده و بعد سیره درست شده طبقه اون اعتبار یا نه بدون اعتبار سیره درست شده این را میخواد بگیر. مثالی که الان من زدم براتون لباس مختص کفار جواب بدید اینجا در امتداد اعتباری بود یا نه اعتباری نیست اینجا سیره شد دیگه شد. سیجه شد. سیجه شد. سیجه شد. احسن درست خواهی دید بله. در اینجا اعتباری نیست کسی نمیاد بگه آقا جم سیره کفار اعتبار کنید که این لباس ها این چیز ها بخست کفار باشه این هر اینجوری نیست مثلا کفار کراواز زدن استفاده کردن استفاده کردن و مال مصنوع هم نبود بعد از یه مدت شد دویگه لباس مختص اونها دیگه جز به پوشاک هست پوشاک مختصه به کفار هست حالا این چه سیر محقق شد ببینید سیره است که ابتدایم محقق شده اما یه مثال بزنیم برای جایی که سیره هست ولی نقطه شروعش با اعتبار معتبره واس باید می‌دونم این سیره برای شما چی؟ محسوم؟ سیریه چجوری؟ یه داریم که سیره. خوب رفتاری، ذهن خوب رفت. مثلا شارع میاد این چیز رو اعتبار می‌کنه و طبق همون عمل می‌کنه اونم چه سیره متشره حالا این مثال عقلایی بزنیم، سیری عقلایی. مثال چتاب، بله آها اگر از رو کتاب گفتی خوبه خوب فهمیدی. اگر از رو خودت گفتی خیلی عالی زنده. خوبه پس خوب متوجه شدی. چون بعضی اونم هی نگاه میکنند که چیزی متوجه نمیکنند. خوب متوجه شدی. ببینید یک اسکناس رو تو زنده باشه مثلا کتاب رو دارم تو زنده. یک اسکناس یک کاغذ دیگه یک کاغذ ها. اگه نفر از پوری مجیخ بیاد اون کاغذ رو ببینه از دوش دوش برای هز... چه ولی برای اقلا چیه؟ ارزش داره سیره اقلا این است که این تیچه کاغذ چیه؟ این مالیت دارد این تیچه کاغذ مالیت دارد با همین یه تیچه کاغذ شما میدید یه شخصی به شما کلی جنس میده همین که کاز رو میدید شخصی به شما یه میده یه گوشی میده یه ماشین میده خب این اسکناس در بین مردم سیره اغلا بین مردم بین اغلا. این هستش که این اسکناس مالیت دارد خب حالا شار میاد همین اسکناس رو که در نزد اغلا مالیت دارن میگه من هم مالیتش رو قبول دارم اسکناس شرعن هم مالیت دارن خب اولا اون نقطه اصل مطلب رو اینجا درست کنیم اینجا آیا مالیت این اسکناس بدون سیره اغلا حاصل میشد؟ یا نه؟ او سیری اقلاست که محقق بشه. یعنی اقلا برای این مالیت قائل هستند که این موضوع حاصل شد. مالیت اسکناس موضوع حاصل شد. و بله اگر اقلا این کار رو مالیت اسکناس نداشتیم. میبینید؟ قشن سیره محقق موضوع تمام اون موضوع هم هست. جوزش هم میزد تا. این از اینجا. اما اون نفتهی که همونجا تقسیمش کردیم گفتیم سیره در راستای اعتبار یا ابتدایم اینجا الان این سیره در راستای یک است چرا؟ چون اولش یک شخصی پقیدی یا حبوبی اومد گفت که آقا جان این اسکناز ها رو این کاغذ ها رو اعتبار می که مالیت داشته باشه بعد سیده بهش عمل کرد ببینید در راستای اعتباری ایز. پس این رو هم بذارید وسایل رو پیده میزن اسکناس که این و ققلا اعتبار مالی نمید این نزدشاره مالیت دارد این هم خواهجون اسکناس مالیت دارد اسکناسی که مالیت دارد اشاره آره قبلش چی شده اوگلا بهش مالیت دادن یعنی اسکناسی که اندر اوگلا مالیت دارد حالا این اندر اوگلا مالیت دارد این باعث شده که این اسکناس به وجود اومده هم باید اعتباری بوده یه معتبری این رو اعتبار کرده سیره ایجاد شده در نزیجه این موضوع محقق شده حالا شاره هم در موردش حکم میده این هم این مثال برای جایی که اعتبار بوده است بسیار با عبارت رو بخونیم ببینیم چیزی نمونده توش بند تکون از اونجا دوباره میخونم نه اول رو بند تکون از سیرت و اقلاییت و محققتن لفرد دو تا فرد حقیقی الان ببینید پشن این لباس مختصف و کفار یه این اسکناسی که مالیت داره نقد نبت. اون نقدی چه دارین این یه فرد است از اون موضوع محققتن لفردن حقیقی من افراد موضوع الحکم شرعی سواان حالا این سواان اشاره من تقسیمه سواان اکا نظار کالفردو فردن حقیقین له لون موضوعیم فی طول لعتبار مثال همون نقد رایج که مالیت نقد اعتباری ببینید نقد اعتباری یعنی اون اسکناس اون ت به اعتبار هم این مالیت نقد اعتباری مالیت اسکناس متحقق است به اعتبار اوغلا اینا اوغلا اعتبار کردن فارسی درست شد او یا اینکه خودشون اعتبار کردن یا او به تقبلهم اعتبارل ال جهت المصدرته به عبارت رو دقت کنید یا یه اوغلا اومدن خودشون اعتبار کردن یا اینکه اوغرا قبول کردن اعتبار یه شخصی رو که اعتبار بخشید او به تطبل اوغلا چه چیزی را اعتبار اون جهت مصدر لهون اعتبار جهت داره یعنی جهتی که روش بنویسید جهتی که اعتبار از او صادر می‌شود یا بگو شخصی که اعتبار از او صادر می‌شود ظاهرا اینکه همه اینا, هم اینا بر تقبل در واقع یا خود اوغلا میان جمع بشن میگن آقا ما از این به بعد این ها رو بهش اعتبار مالی قائل می‌شیم مالیت اعتبار بدن. اون دورش رو, رو قبول نکردن خودشون اعتبار بخشیدن. یه وقت هست که شخصی اعتبار می‌بخشه بعد اونها نگاه می‌کنن میگن آها خوبه آها می‌پذیریم. این تقبل اون خودشونه. در قبول کردن اعتبار بوده. حالا این این بحث نقد مالی ببینید کدوم هست دوباره. آیا در اینجا تقبل کردن یا خودشون اعتبار بخشیدن؟ این ممکنه هر کدوم باشه برای هر رفتش میتونه باشه بسیار خوب فردا تو امتحان پرسیدن جهت مصدره الله اولا مصدره بخونیم یا مصدره مصدره, مصدره اسم فایل بخونیم یعنی اون جهتی که صادر کننده این اعتبار است معنیش چی؟ که گفتیم بسیار خوب او کان فردم حقیقیًا لئون موضوع ابتدائن اینجا دیگه اعتبار نیست مثالش هم عرض کردیم خدمتتون. حالا بازگواره یه مثال دیگه میزنه که آلت القمار آلت القمار ببینید الان تو این مولت ها باید سری مثال رو برای خودتون بنویسید روشن کنید آلت القمار خب این چی الان؟ کشم یه موضوع درست کنید حکمش رو بیارید سیره رو ببینید کجاشه حتی اینجوری باید کار کنید آلتالقما الان در این مثال یه موضوع هم یه حکم مثال اینجوریه موضوعش دقیق بزن سخت میشون درست کردن این مثالها سخت میشون آلتالقما آلتالقما این موضوع حکمش هر ایست حالا حکمش چیست؟ به نظر نگهته حکمش رو من میگم. آ... آلات حالا قمار یه حکمش مشو بگی حرام خدا چی گفته؟ حرام. حرام چیش حرام؟ حوالی که... آلات حالتو خود حرام نیم چه؟ که زادی که خرش حرام هست ها مثلا بهش خیلی خروشش بله نگهداریش بهش، مثلا آر... نگاه کردنه به بشوی... شاید یه نوع حالا من بهش رو میگوستم به ای این آلات ما حرام است به آلات ما حرام است خب سیره بود سیره بود یعنید این خودت گفتم سخت میشه بده الان بی و خرید و فروش آلات قمار حرام است. سیرال نمیتونید توش پیدا کنید. مگر با دقت. هر چیزی که در... آها آه میگه آره. آلات قمار رو تعریف کن. alat قمار چیه؟ آره آره. آره. ببینید الان ما با همین صندلی‌ها که اینجاست هست یک یه قمار بازی کنید؟ میشه؟ آره چرا؟ آره. میشه یه جوری مثلا بگیم ما هر مثلا این وریار رو برداشت نمیدون چی بشه عمر. میشه یه جوری بازی کرد میشه. با توپ هم میشه قمار بازی کردن اما توپ و این صندلی و اینها آلت قمار محسوب نمیشن عرف هم. چرا؟ چون آلت قمار در عرف آن چیزیست که قمار بازی کردن با اون متعارف باشد یعنی هر که اون رو میبینه روی خب آره روی این ابزار قمار است نه اینکه توپ رو ببینه توپ ابزار ورزش و بازیه خو خب. دارید می‌دستی به سیره با این توضیحات آلت القمار آن چیزی است که حالا بگید با سیره تعریف کن کلمه سیره رو بیارید توش آلت القمار با من با؟ آلت القمار آن چیزی است که بگید سیره تعریف؟ قد... نه گشت هرچه سیره اقلاب بر استدوار؟ نه صوت کو ثابت نه تحقق ثابت آخری است. سیره اوقلاب بر کممار بازی کردن با آن با. حدن. یعنی او سیرش میه که با این ابزار کمار بازی میکن. پس میشه حالطور کمار ببینیم در این موضوع سیره رو می‌بینیم و اصلا این سیره باعث شد که بهش بگیم حال کمار اگر سیره بر و این چید نبود، یالۃ القمار نمیشود. الان فرض کن ورق مثلا پاسور. این رو باهاش قمار بازی کرده اند. اوقرا، سیره اوقلا بر قمار بر این بوده. چه بهش بگیم این آلت القمار. اگر باهاش قمار بازی نمی‌کردن، رو هیچ چیز کوغاش. آلت بودن با این سیره محقق شد. دیدید؟ ببین این مثال رو اینجوری توضیح ندادم. من قشنگ براتون همشو باز کردم. لذا اینا رو نذارید از سرتون بره الان فهمیدید دیگه ثبتش کنید تو دو دفتر به بنویسید تا بعدا فراموش نشه وقت بشه بسیار کو کعالت القمار آی کوسری این کعالت القمار مثال برای چیه کاف مثال برای چیه مثال برای چیه مثاله مثال برای است که سیره ا ابتداعن. در امتداد اعتبار نیست خانه فردن حقیقیا له ابتداان که چاله تلقی یعنی چیزی نیومده بگه آیان آیان اوغلا این ورقه پاسور رو میبینید اعتبار میکنین که این الاله الخمار باشد نه نبوده بازی کردن چم کم چم چم, چم چم شده دیگه الاله الخمار چاله الخمار البته بناعم بناور این چه تفسیر کنیم آلت قمار را الا تفسیره ها به ما تو عرف تقام رو به تور رو فر رو درست بخونید عبارت رو استوارا کنید متعارف شده است قمار بازی کردن با آن آلت القمار اینه خب تا گفتیم متعارف باشد یعنی سیر روش باشه یعنی سیره رو محقق کرده این هم یه مثال یه مثال دیگر و لباس الکفاره چه اینو من توضیح دادم که به جریان سیرتهم علا لبسهی سیره کفار بر پوشیدن لباس باعث شد که لباس الکفار محقق شد و من هاز القبیل سیرت و لتی تنقه و ظهورت دلیر حالا یه مثال خیلی جالب علسه منو ببینید توضیح بدم خدمتون سیره میاد موضوع را منقحه و محقق میکنه یه مثالش هم همین ظواهر ظواهر الفاضی شارع فرموده است یه حکم با موضوعش شارع فرموده است از ظواهر حجت درسته مطلبش موجودش چیه؟ زواهر. زواهر زواهر رو چه چیزی زواهر کرده است؟ زواهر یعنی اون چیزی که از الفاظ میفهمند. ببین میفهمند. رفتیم رو سیری اغلا یعنی اغلا اینو می فهمند. پس زواهر تحققش منوط به اون سیره اغلا خیلی جالب شد یه مثال برای همین زواهر ببین و منها از از سیر تولتی و ظهورت دلیل. زیره که ظهور دلیل را منقه و باقه می کند. حیث چطور؟ حیث این نه. سیرال اقلائه و مرتکزات تهم تهم بخونید این منصور. و مرتکزات تهم توتبر و به مطابت القرائن اللبیه. خب این توضیح می این دیگه موند برای فرداش الله. سلام بچه‌ها الله الله الله